چه 14 فقه و سیاستم دومه 1240 بسم الله الرحمن الرحیم هل ثانوی نداریم اون نظر دو تا بحث داریم نکردیم من عرض نکردم کردم حکم ثانوی نداریم و عرضم این بود که انا حکمی که حکم سانوی نافیه حکم اول نیست و تغییر دهنده حکم اول نیست یعنی بعضی ها میگن که اینجا حکمش عوض شد اگر در شما قضاوت انحصار پیدا کنید تا حالا که واجب کفایی بود حالا میشه واجب تعینیم بعضی بزرگ بود مثل امام و اون تعبیلی که ما اینجا الان خواندیم یه مقداری حسش متفاوته نمیگه اون تغییر کرد میشه حکم دومه اون در واقع یک نکته اساسی اینه که آیا موضوعات در واقع تنها یک حکم دارن اگر ما فرض بگیریم در واقع فقط پذیرای یک موضوع در نزد شاره هم یک حکم خواهند داشته باشند اما اگر اگر موضوعات با لحاظ های مختلف در واقع اناوین مختلف بپذیرند که میپذیرند میتوان گفت که در واقع موضوعات موضوعات میتوانند احکام متنوع داشته باشند البته اینجا با یه تسامای عرض میکنم در واقع لحاظ قیود در واقع مقتضی در واقع شکلگیری موضوعات متنوع اون تعبیر قبلی یه جنبه خلاصه تسامح داره گفتیم که موضوعات میتوانن احکام مختلف داشته باشن اون یعنی چی؟ یه موقع موضوع رو ما بدون لحاظ در واقع خلاصه اون ریزکاری و قیود در نظر میگیریم توجه نمیکنیم یه ویژگی که به اضافه میشه میشه یه موضوع جدید در واقع دو روی کرده به موضوعات داریم با یکی نگاه با نگاه تساموهی این نگاه تساموهی مقتضی چیه؟ در واقع این نگاه مقتضی عدم لحاظ هیسیات برخی قیود وله هاز هاست اینجا با این تسامح در واقع ما فکر میکنیم که این موضوع عوض نشده در واقع این نگاه خلاصه تفاوت های موضوعی رو نمیبینه و همه رو تقلیل میده به یک موضوع میگه های موضوع دیروز بود شما چرا در دیروز یه یا حاکمی کفتی امروز یه حاکمی در واقع عدم دیدن تفاوت‌های موضوعی باعث سردرگمی میشه سردرگمی از چه جهت؟ در شناخت و در تحلیل تنوع احکام یعنی چی؟ یعنی به خیلی فکر میکنن که موضوع در واقع اینجوری بگیم در تحلیل موضوع در واقع توجه احکام متنوع به موضوع میشه یعنی چی؟ یعنی تصور میشه تصور میشه که یک موضوع احکامش حکمش داره تغییر میکنه ولی در صورتی که نه روی کرده دوم اینه که با نگاه دقیق با نگاه دقیق ما می‌بینیم که لحاظ همه حیثیات مختزیه چیه؟ مختزیه تفکیه که اناوین موضوعی با لحاظ در واقع این حیثیاته اگر ما این حیثیات رو متنوع ببینیم اناوین موضوعی خلاصه میبینیم که متفاوته در نتیجه در واقع سخن از تغییر حکم یک موضوع به راحتی منتفی میشه اجتماعی خلاصه ما دیگه نمیگیم آقای موضوعش تغییر کرد این یک نکته پس با نگاه تسامحی و نگاه دقیق ما باید اینا تفکیک کنیم اما عرض ام این چیز دیگه ای بود که به خاطر اینکه سوء تفاهم نشه ما این رو عرض کردیم آیا موضوعات تنها یک حکم دارن اون یه بحث دیگه است که به این داره نزدیک میشه میخوام عرض کنم که این در واقع موضوعات تنها بگیم اینجوری بگیم تنها یک عنوان و در نتیجه یک حکم دارند بدون حالا در, در واقع گذشته از اون تسامح گذشته از نگاه تسامحی به موضوعات میخوایم بگیم که اصلا شار متعال به یک معنی بگیم که اون تساموه ها رو اینجا لحاظ کنیم نگیم گذشته از اون با خلاصه توجه به اینکه یک موضوع میتوانه لحاظ های مختلف به پذیره شاره فقط یک حکم برش در نظر گرفته یا این که نه اگر حیثیاتی بیا برای اونها حکم دوبایی به همون موضوع مشترکی و اون انصار مشترکه میخوره که حالتهای مختلف پیدا میکنه عرف عادی شاید خلاصه این رو بر فرض گرفته که خب هر موضوعی یه حکمی داره بعد انتظار احکام بعد رو نداره که نه تلقی ثانوی موقتی میگیره در صورتی که در واقع لحاظ عناوین فوقانی در واقع بگیم لحاظ اینکه امکان اروز اناوین مقتضی اینی که شاره قلصه برای یک موضوع با اون تحبیر برای یک موضوع و عنوان بگیم موضوعی در واقع این وحدتش تسامحه. اینجا نمیخوایم همه چیز رو بگیم تسامح. این وحدتش رو داریم وحدت تساموهی با وحدت تسامحی میگیم نه آقا اناوین فوقانیش رو ببینی دو سه تا حکم دیگه هم ممکنه دو تا عنوان فوقانی پیدا کنه پس میخوایم ارز کنیم که هدف اصلی اینه که استیحاش نکنیم هر موضوع یه حکمی داره اون موضوع تصمیم بگیم بابا اگر اناوین جدیدش رو لحاظ کنی احکام دیگه هم داره همون نگاه تصمیه اینجا بهتره چون که در واقع بسیاری تصور میکنن خلاصه تصور میکنن که شعره در واقع احکام محدودی داره و در واقع به تعدد اون اناوین خیلی ج... اون تنوع اناوین رو خلاصه جدی نمیگیرند تنوع پذیری یک موضوع در واقع عناوین اگر لحاظ بشه خلاصه این مشکل برطرف میشه خب حالا اینجا تو بحث حفظ نظام حفظ نظام هدفمون از این بحث چی بود اینکه می‌خواستم می بگیم که آقا شما اینجا لحاظ بکنید که حفظ نظام از همون اول میتوانه مد نظر شاره باشه یعنی میگه که یه موقع شما همیتون با نگاه فردی نگاه کنی یه موقع با نگاه جمعی اون تعبیری که میگیم فقه فردی فقه حکومتی این به این خیلی نزدیک میشه در واقع اینطوری بگیم روی کرده حکومتی به فق و لحاظ، حیثیات اجتماعی حکومتی سیاسی حکومتی مقتضی خلاص مقتضی توجه جدیتر به اروز اناوین خلاص اجتماعی اناوین در سطح حفظ نظام و این هاست حفظ نظام اختلال نظام یعنی اگر ما با حیث با روی کرده فردی نگاه کنیم میگیم اصلا اختلال نظام چیه؟ من دارم این کار رو انجام میدم چرا؟ میشه بگیم که چون که همیشه تو فقه این بحث اختلال نظام بوده روی کرده اجتماعی به فقه در فقه در واقع روی کرده اجتماعی در فقر معمولاً حاوی چی بوده؟ حاوی توجه به مقوله حفظ نظام اجتماعی مقوله اختلال در واقع در سطح جامعه بوده حفظ و اختلال نظام اجتماعی تا اندازه بوده چرا میگیم تا اندازه؟ چون که اگر حکومت دست فردی نباشه همون مقدارش هم خوب نمیتوانه توجه کنه خب پس اینجا میخواستیم کل این ارائز تأکیدی بود برای این که این اختلال نظام رو یه چیز وصل پینه ای نبینید اگر در روی کرد فرق فردی باشه که فقط به اون وضعیت اولیه کار داره شما خیلی نیاز نمیبینید در واقع روی کرد فردی نیاز چندانی به لحاظ عناوین فوقانی اجتماعی سیاسی نداره اما روی کرده اجتماعی که رایج بوده و بالاتر روی کرده حکومتی و حتی بالاتر روی کرده تمدنی مقتضی لحاظ عناوین اول فوقانی خلاصه مانند حفظ نظام و حتی حفظ نظام سیاسی از اون و نظام تمدنی بالاتر بدیم خواهد بود این‌ها رو, رو باید در نظر بگییم می‌گیم بعد احکامش هم در میام خب حالا اگر میخوایم بحث رو یک قدم پیش‌تر ببریم ما می‌دیدیم که ما واجباتی داریم، واجبات نظامیه داریم، موضوعات اینجوری شکل می‌گیره، اختلال نظامی داریم، تحقق نظامی داریم. خب، حالا اینجا اینا خودشون چجوری تحقق پیدا می‌کنن؟ به تو ببینم بعد اینا ما تأکید کردیم در واقع تفکی که باز یاد آوری می تو موادی تصوری بالاسه در موادی تصوری ما تفکی که نظام اجتماعی کردیم از نظام سیاسی داشتیم تفکی که نظامات اجتماعی سیاسی مجموعه اینها ای در واقع بگیم اینطوری تفکی که نظام های خورد از نظام های تمدنیم اینا سر جای خودش پیش فرض ماست جز مبادی تصوری است که ما اینجا عرض کردیم با روی کرده اجتماعی بعد بالاتر در واقع روی کرده حکومتی بعد روی کرده تمدنی پس ما اینجا در واقع سطوح خلاصه سطبندی روی کردها رو کردیم اینجا شد یه جایی شد فردی بعد گفتیم نیازها متفاوته. اما سطح بالاتر چیه؟ در واقع روی کرد اجتماعی شد بعد میگیم رویکرد حکومتی بعد میرسیم به رویکرد تمدنی که خیلی جامعتره. تره اینجا پیشفرزش اینی که نظام، مفهوم نظام تنوع داره نظامی داریم، سیاسی داریم، اجتماعی داریم این از یک جهت یکی هم تفکیه که این حفظ نظام و اختلال نظام این مفهوم ساده ای ولی برای این تاکید میکنیم و توسعه نظام تقویت نظام اینها هر کدام خلاصه اختزایی داره شما مثلا حفظ میکنید بعد یه مرحله تقویت میکنید اینا جنبه ایجابی داره بعد میرید چیکار میکنید توسعه نظام میدید پس حفظ تقویت توسعه بلکه مرحله اولش ممکنه ایجاد نظام بگید ایجاد، حفظ، تقویت، تو اینا رو برد تفکیک کنیم در مقابل اون جنبه سلبی رو هم باز پیش داریم میگیریم اون چیه؟ در واقع بگیم که مقابل ایجاد نظام از بین بردن نظامه خب از بین بردن نظام البته میشه یه حد نهایی بگیریم ضعیفتر از اون چیه؟ اینکه تضعیف نظام بکنیم اختلال نظام ایجاد بکنیم حالا اختلال باید ببینیم با تضعیل چه تفاوتی داره کدام پررنگتره خب پس در جنبه ایجابی و سلبی همه اینها ممکنه ما چه کار کنیم مثبت ببینیم منفی ببینیم این تفکیک کار بکنیم خب برگردیم به اینو فقط اشاره خواستم میکنم اینجا ببینیم هر کدام از اینها چگونه شکل میگیره به طور نمونه مثلا اختلال نظام در چه صورتی شکل میگیره بعد میتوانه احکامی داشته باشه بعضی بزرگان ببینید به این مفاهیم توجه دارن مثلا از متها کتاب القضا جلد دوی هم آشتیانی توی بحثی صفحه 848 میگه ما هم ملاحظت ما دل علا وجوبه ترک ما یوجب اختلال نظام پس الان اینجا ما یه مفهوم اختلال نظام داریم یه مفهوم دیگه هم داریم موجباته اختلال نظام چیزی که به اختلال نظام می انجامه موجبات تضعیف نظام موجبات زوال نظام خب اینا یه موجباتی دارن پس از اون طرف موجبات چی داریم؟ موجبات ایجاد نظام موجبات حفظ نظام پس ما باید ببینیم موجبات هر کدام چیه؟ من تو فض... میخوام ارز کنم که تو این فضا یک عنوانی داریم که تحقق پیدا میکنه میگیم اقا اختلال نظام تحقق پیدا کرد یه موقع میگیم یک چیزی منجر به اختلال نظام میشه خب اختلال نظام که حاصل شد میخوایم این یه حالت وضعیته تضعیف نظام ضعف نظام این یک وضعیته زوال نظام یک وضعیته اما یه افعالی داریم یه موقع میگیم الان شما دارید تضعیف میکنیم یه موقع میگیم دارید اختلال ایجاد میکنیم اخلال نظام پس در واقع مفاهیم، حسد در واقع نتیجهی بگیم در واقع مستری بگیم این میشه چی؟ اضاله نظام خب؟ یه تضعیف نظام اخلال نظام این میشه مفاهم مستری و فعلی اما یک جای مفاهم چی داریم؟ مفاهم حاصل مستری داریم حاصل شد رفت زوال نظام از بین رفتن نظام ضعف نظام خب این نتیجه است اختلال نتیجه است لذا نیاز داریم به بحث چی؟ موجبات در واقع یه موقع میگیم شما مثلا نماز جمعه بخان نماز جمعه مستحب است نماز جمعه واجب است نماز خاندنه اون تفکیک که مرحوم ناینی داشتن بحث فعل و نتیجه میتوانه در واقع اون پررنگ بشه خودشان فرمودن مستری و حاصل مستری و اینها اینجا باید تو این قسمت تفکیک بشه خب حالا برگردیم این تحقق اخلال نظام اختلال نظام اینجا جای قد داره حالا اینم کمک میکنه که ببینیم مفاهیمم هم سر جای خودش به کار رفته یا نه مثلا برای اختلال نظام ما شرایطی که لابلای فرما شد علما من حالا خودم پیدا کردم. میشه این موارد رو بگیریم آیا لازمه که اگر ما بخواهیم بگیم مثلا اختلال نظام حاصل شده باید در همه زمانها صدق کنه یا یک زمان محدودم میتوانه پاسخ مثلا مرحوم میرزا محمدتق شیرازی در هاشیور مکاسبشون جلد یک صفحه 153 اینه که لازم نیست در همه زمان ها صدقه بکنه تا ما بگیم آقا اختلال نظام حاصل شد من الان اینجا داخل پرانتز دارم ارز کنم دارم چه کار میکنم تو این فقره دارم ذهن دوستان رو با بحث تحقید تحقق موضوع, موضوع شناسی تحققی دارم اون سمیدم یعنی شما یه بحث باید داشته باشید اون چیه در واقع یه موقع میگیم موضوع شناسی چیه تعریف تعریف خب حال ما تعریفش کردیم اون یه بحثی یه جایی میخوایم ببینیم تطبیق در واقع میخوایم یه حکمی پیاده کنیم این موضوع رو تطبیق کنیم یه جایی هم یه کمی از این دو... به این نزدیکه ولی از یه جا متفاوته در واقع تحقیق موضوع میخوایم بریم موضوع تحقق موضوع تعریف کردیم اختلال نظام چیست یه جایی میخواییم بریم مثلا تقوییت نظام چیست میخوایم بریم تطویقش بدیم نظام رو تقوییت بکنیم تقوییتش میشه چی اقدام به تقوییت نظام موضوع داریم ایجاد می کنیم در واقع تطویق و ایجاد موضوع یه جایی در واقع تحقیق می کنیم تحقیق سنجی می کنیم در واقع میخوایم ببینیم الان چی تحقق پیدا کرده؟ الان این زاویه بحث ما در واقع اینه که شرایط تحقق اختلال نظام تو این تعبیر که کردم که آیا همه زمانه باید باشه تا اختلال نظام صرف پیدا بکنه میخوام این, این مفهوم الان تحقق پیدا کنه نه اگر شما بگید که در همه زمانه باید باشه یه مورد پیدا کنیم اونجا دیگه نمیشه بگیم اختلال نظام بگیم نظام خیلی عام دیگه مرحوم شیرازی اینطوری میفرمایند و یمکنن یکون المراد ان الواجبات الکفایه لعجل اختلال نظام به ترکه ها لا یکونوا واجبا تنفی از ازمنه نه آقا میشه بگیم که لازم نیست در همه ازمنه باشه تا اختلال نظام در واقع صدق پیدا کرده باشه نه کمش هم میتوانه فا اینه جله ها مما لا و ترکیفی بازل از من لا اقلم مقدار یومین او یومین از سلاستین اختلال و نظامین ففعل و حافی ها زد زمان لازی لا یزور اختلال نظام لا یکون واجبن اصلا باید نکته نکته حکم شناسانه ازش گرفتن که اگر بگیم همه زمان وقت باید باشه اگر بگیم خلاصه کمش میشه نمیشه خب یه نتیجه ای که میگن که نتیجه اینو که اگه ترکش بکنیم مثلا این فعل رو اون واجب و کفایی رو انجام ندیم آیا اختلال نظام صدق میکنه یا نه که توی یه صورتی میگن چیه نه این ضرر نمیزنه اگر یه روز دو روز سه روز تک بشه این خلاصه حکمش اینگونه است اونگونه بعد جواب میدن جواب میدن و یمکن الجواب ان hazards تقریب بند مجرد عدم توقف نظام الا فعل صناعات فی خصوص بعض الازمان لا یختزی عدم وجوبه ها باشه اختلال پیدا نکنه توقف نظام بر اون نباشه اما وجوبش سر جای خودش پس یه نکته حقوق شناسه دارن و تا آخر میرن که ما با یه قسمتش کار نداریم می‌فرمای ما فرض توقف علیه حافظ زمن المتأخر قایه الامر ان تكون من الواجبات الموسعه لجواز تاخیر او الی زمان یختل النظام بتاخیرها عن خب یه جایی میگن آقا ال اینجور نیست که حتما همین کار الان ترکش کنی توقف نظام نه میشه حالا یه شب بنداز دیزتر یه دو ماه بری دیزتر مثل حالا برین مسافرت حجربه اشکال داری دیگه به این اورف نمیگن مثلا پس یه بحثله که اختلال نظام چجوری تحقق پیدا میکنه آیا همه زمان ها رو باید توش لحاظ کنیم یا پاره زمان میشه جدا در نظر بگیریم مورد دوم شبیه این در مورد تحققش آیا یه سر امور وجودی باید باشه نباشه اختلال نظام با نبود برخی از شرایط یا تا عدم تحقق برخی از امور وجودی راحتی می تواند مستق پیدا کنه مثلا اگر تنها یه اده از آهاد مکلفانی که یه وظیفه اجتماعی گردن اونهاست اینا به وظیفه خودشون عمل نکنن اختلال نظام میتوانه حاصل بشه چرا چون این واجبه گردن اونها بود این واجبه رو که انجام ندادن نه ممکنه مشکل آفرین باشه یه جایی میتونه مشکل آفرین نباشه اما یه جایی مشکل آفرینه مرحوم همین محمد تقی شیرازی در حاشیه الالعالم میوزم محمد تقی شیرازی علامکاس بشه شیخ زم الارض زمیل انصاری جلد یک چون این مقوله‌ای رو دارن یه پاروگارف پنشیش خطه می که حالا دویه جواب و تو اینا دارو جواب میگن آقا ما اینجوری این جواب مثلا نکته نکتر قبول نمی‌کنیم که می توانیم بگیم که آقا یه سر امور واقعی هستند و متعدد نیستن و اختلال نظام بر مجموع اینها حاصل بشه بنا نفرس. امورا واقعا لا دم یا ترت تبال اختلال الان ترک مجموعه ها لا کل واحد من ها شما تا یکیش ترک شد نگید که اختلال نظام حاصل شد نه ممکنه ما بگیم در یه صورت خاص اختلال نظام حاصل میشه اون چیه مثلا ترک مجموع فعضا فعل بعض و سانین بعضا هام الوجوب ان سایرین لفرض عدم الاختلال به ترک باقی امور. بعد ف ول اشکال متقدم اینما یتوجه و ازاکان ما یترتبال اختلال علا ترکه ای امرن واحدن او امورن متعدد یترتبال اختلال علا ترکه کل واحد منها لما عرفتم ال الاشکال و, فلان و این مثلا یه جایی فرض کنم صد نفر تقسیم کار کردیم آیه هواپیما رو باید ببریم بالا باید کارش بکنیم حالا اینجا بد نیست برای از ازهان و یه کمی خوشمزگی و هست یه نکته یه ارز کنم یه تشبیح مستاق خارجی یه بزرگواری که متخصص... مت... از این متخصصین تعمیر هواپیما و اینا بود گفتیم تفا... صحبت شد بین تفاوت مدل روسی و آمریکایی. نکتش این بود که مدل آمریکایی به تحبیر ایشان متخصصین و تکنیسین ها تقسیم کارشون این گونه است یک کسی مسئول برقه در هر جای مثلا فرض کنیم هواپیما باشه یکی مسئول لاستیکاست یکی مسئول مثلا فلانه در هر جای این هواپیما باشه تقسیم موضوعیه میگم آقا شما بیا مثلا رنگش رو کار داشته باش هر جا بود مدل روسی چیه این که تقسیم قطعاتی می‌کنن میگن آقا دماغش برای شما میخواد برق داشته باشه میخوام مثلا لوازم الکترونیکی داشته باشه میخوام رنگ داشته باشه میخوام مثلا اونجا یه پلاستیکی باشه همه چیز قطعاتش رو شما باید یه کاسه دستت باشه پس ببین الان اینجا یه تفکیک جالبیه بین اینکه یه سری امور واجبیه مثلا خب هر کسی یه مستاقش رو ممکنه محقق کنه آقا شمشیر رو مثلا پنجا نفر میتواند درست کنن پنج دفر رفتن هج خب شمشیر, بازی، شمشیر سازی تعطیل نمیشه و پنجا نفر دیگه دارن اما یه جا تقسیم کاریه خب اون تقسیم کارم تازه ما بفتیم مثلا فرض کن دو مدل اینجوری خب کدامش اختلال نظام حاصل میشه یه موقع مثلا شما فرض بگید میخواد بری جنگ یه تقسیم کاری هست اگر شما که مسئول غذایید غذا رو نبرید پشتیبانی نکنید این بیچاره ها میرن همه گردان و تیپ و لشکر همه کارشون متوقف غذا سال یه روز دوام میارن دو روز دوام میارن گرسنگی شما یک کار کوچولو یه ماشین بیشتر دست شما نیست ده نفر دست شما بیشتر نیست ولی یک لشکر رو شما خلاصه فشل می کنید اختلال نظام ارتش ایجاد میکنید اما فرض بگیریم یکی مسئول واکس زدن, زدن کفش باشه حالا نباشی و باشه اختلال نظام ایجاد نمیشه پس حالا این را تو بیانشان نبود میتوانیم ولی یه جو سخت بندی موارد بکنیم پس نکته قبل چی بود؟ نکته قبلیم بود که با نگاه زمانی نگاه کنیم ببینیم تحقق اختلال نظام چه جوری شکل میگیره آیا همه زمانو باید باشه یا یه پاره باشه یا نباشه تاثیر داره مورد دوم اختلال تحقق پذیری تحقیق پذیری در واقع بگیم تحقیق موضوع این گونه است که بود و نبود برخی شرایط یا برخی از امور وجودی بعد لحاظ بشه که از بزرگان لحاظ فرمودن یه نکته دیگه نسبت این عنوان با سایر موارد خب مثال های جالبی هم در ذهن دوستان برای اون فرماشه قبل میتوانه شکل بگیره خب شما مثلا میاید فرض کن اگر مثال دوستان رو من درست فهمیده باشم بحث لوله کزاری آقا یک کسی میاد همینطوره میکنه میره یکی میا همینطوره لوله میذاره یه جایی که فقرش ممکنه دو مشکل بشه همه اونها بایدو فنا میره یه تککر را مثلا نمیذاره بر اگر مثال دوستان این مراد بود خلاصه یه جاهایی کارا به هم گره میخوره یه جایی نه شما کارتون مستقل تاثیر خاص رو میذاره پس باید ما از جهت وجودی و شرایط تفکیک کنیم که کارها کدامش اختلال آفرینه کدامش اختلال آفرین نیست در واقع تفکیک به خلاصه در واقع فعالیت ها ابزار ها امکانات و وضعیت های اختلال آفرین از موارد دیگه ممکنه یک مقوله باشه خیلی هم برش هزینه میکنیم اما اگر نباشه اختلال جاد نمیکنه اما باز این موارد پس بعد تو هر مورد شناخت در واقع کار فقینی که باید شاخصت رو شاخصه رو ارائه بده دکتر دو سوم این بود که نسبت مفهوم مثلا اختلال نظام با مفاهیم دیگه چیه میگم یک عبارتی از حضرت امام من خواندم خدمت بزرگواران وقتی که خلاص در رفت و برگشت‌های حکومتی می‌خواستن اختیاراتی به مجلس بدن سه تا مقوله رو از هم جدا کردن اختلال نظام و اسر و حرج و یکی دو مورد پس اینها یه جایی مشابهت دارن اسر و حرج ممکنه تأثیر هم داشته باشه اگر یه مقوله اسر و حرج داشته باشه ممکنه افراد, تر... افراد ترکش کنن بعد به خاطر اون اسر و حرجه اختلال نظام حاصل بشه ولی نقطه اصلی که بین این تفکیکی هست مفهومان متفاوتن ولو اینکه یه جایی به هم نزدیک بشن بعضی ها توجه به این تفکیکی کردن بعضی ممکن این توجه رو نکنن یه جوری مثلا بگن که اسرو حرد یا به این از این زاویه توجه دارن. که عصر و حرج زمینه تحققش پیشتره اختلال نظام به این راحتی تحقق پیدا نمیکنه اما عصر و حرج شما مثلا مریض میشید بخواید نماز رو این گونه بخواید خیلی راحت به عصر و حرج فردی میفتید یه نغوله در فضای اجتماعیات حاصل نمیشه عصر و حرج پیش میام عصر و حرج یه چیز عامتریه به یک منا ساده از اختلال نظامه قصر و باشه لزومن ممکنه بگیم نظام مختل نشده سخت شده مثال فرض بگیریم شما یه ساختمان میخواد بسازید قوام ساختمان به چیه اینکه که داشته باشه مثلا یا تیرچه بولوگ یا هر چیز جایگزین. این ساختمانه مثلا ده طبقه ما میگم با آهن یا با تییو بلوک میام این شاکلش رو درست میکنیم. دیوارم همه جا که نیاز هست میزنیم این میشه چی میشه ساختمان اگه نداشته باشه چی؟ این از ساختمان بودن نمیوفته. تحقق نظام مثلا بگیم نظام می اینجوری هم باشه. اما اگه در نداشته باشه پنجره نداشته باشه چه اتفاقی رخ میده تو سرما گرما شما دوچار رو حرج میشید ولی ساختمان بودنش تق پیدا کرده. خب رنگ آمیزی چی؟ رنگ آمیزی دیگه جز اون رفاه و زیباسازیه اگه نباشید لزومه اصر و حرجی نیست مگر اینکه شما یه آدم خیلی خاصی باشید خیلی آدم با زوغی باشید اینقدر زوق در شما پررنگ باشه که اگر شما خلاصه دیوار منزلتون رنگ نکنید اصلا خلاصه مریض میشید خدای نکرده البته روحیه خانما غایقد به این می انجامه و بعضی موقع قابل کنترل نیست اما اون جاهایی که خلاصه بعضی آقایان بعضی خانم ها خلاصه این روحیه رو ندارن و اذیت نمیشن میشه غیر روحی روانی دیگه بعضیا حالا در ممکنه یه نوع بیماری شما حسابش کنید می توانید نه بعض عادی حساب کنید این عصر حرج نیست حالا اگه بود بهتره ولی بعضی ها ممکنه خیلی بس باشن یه روحی خاصی داشته باشن اون به اون ویژگی افراد برمیگرده، اون عصر و حرج نوعی نیست اون مثلا تحضیه این منزله خب در اختلال نظام عصر حرج هم همینطور اینا رو پس یک نکته اینه که در واقع سطح اه سطح اه کار یه گونه یه که لزومن عصر حرج ممکنه ایجاد بشه در واقع تفکیک اسرو حرج از خلاصه اختلال نظام بله یه موقع میگید نظام رفاه اون فرق میکنه نظام رفاهی منوط به چیه منوط به عدم اسرو حرج اون یه مقوله خاصه اما نظام شیست نظام تحقق نظام ها که منود نیست لذا این دوتا رو باید تفکیق کرد نکته هم که که دوستان فرمودند به این صورت ارز میکنم خب در تحقق نظام ها ما باید تفکیک کنیم مثلا در نماز واجباتی داریم ولی بعضی واجبات شرط و رکنن اگه نباشه اونجا در واقع اون اصل نماز بودن از نماز بودن میفته حکم خلاصه باطل میشه تفکی که در واقع بگیم واجبات رکنی نظام در واقع واجبات نظامیه رکنی از غیر رکنی از این حیث که البته حالا اینو ممکنه تردید کنیم بگیم که واجبات نظامیه چی بود اون که نظام جامعه خلاصه مختل بشه بهش میگیم واجبات نظامیه حالا این رو به هر حال اینطور مقوله ها در اینطور موارد قابل تفکیک هست برخی موارد ممکنه روکن باشه اگر روکن باشه برای تحقق نظام اونها تحقق پیدا خواهد کرد و الا فلا و تمام. ببخشید. ای اینجا نظام ما با یک خلاصه یه چیزی که به نفع دوستان بزرگوار پیگیر شد، مختل شد. ببخشید چند لحظه. ببخشید. خدمت شو از کنیم پس یه بحث اصرو حرج و سایر اناوید منطقا اصرو حرج یه وقت به این مقوله چون نزدیک تر بود این اهمیت مربوط به این مقوله داره من حالا بعضی از توجه های بزرگان مرحوم شیخادی تهرانی که در نجاف تشریف داشتن و یه روی کرده خاصی داشتن یه فقره از ایشان عرض میکنم خسن الاحتیاط فی البدیهیات ولیکن ازاعت دا الا اختلال نظام عمل عصر شدید فلا اشکال فی قبهه بس ببینید اینجا اختلال نظام یه مفهوم عصر شدید یه چیز دیگه است یه جای احکام منوط به اختلال نظامه یه جای منوط به عصر شدیده در واقع تفاوت اناوین خب حالا نگاه کنید اون بحث اون اناوین فوقانی پس اینجا هم گاهی خود هست حالا شما ممکنه یه چیزی بگید در, در واقع اناوین فوقانی و تحتانی رو شما ممکنه از این منظر بگید اگر اختلال نظام باشه آیا, آیا هر جا اختلال نظام باشد اصرو هرج تحقق میابد؟ احتمال داره انتظار میره که خلاصه میرود که چون این نکته رو بپذیریم به راحتی پذیرفته بشه اما برعکسش چی اما عکس اون خیلی قابل قبول نیست چون که اختلال نظام ایجاد بشه اگه نظام اجتماعی رو میگیم یعنی که اون چیزای اساسیش ارکانش به هم خورده اما برعکسش نه ممکنه اصرو حرج ایجاد بشه در واقع اینطور بگیم با اصرو حرج با اصرو حرج در واقع نظام رفاهی به هم میخورد اما نظام جامعه اصل نظام جامعه اون ارکانش در واقع اصل ارکان جامعه و نظام اون خلاصه به هم نمی خورد لزومن ممکنه جای هم به هم بخوره لزومن به هم نمی خورد لذا اینها نسبتشون مطلق نیست خب مورد دیگه مرحوم آقای روحانی مثلا این تعبیده اما احتیاط و تام فا کان یوجب اختلال النظام فلا کلام فی عدم وجوبه و اما ازاکان یوجب و الاسرول هراجب بلا اختلال فی نظام فقط یهتم الادم و وجوبهی استنادن دل الان نفی الاسره و الحرج تو بحث اولا اصولی خودشون جلد چار صحبت از احتیاط تامه آقا این احتیاط های اجتهادی خوبه یا نه خب خیلی موقع میگیم آقا احتیاط خوبه اما یه جای احتیاطی داریم که خیلی شدیده دو سطح از تأثیر ممکنه داشته باشه یه سری احتیاطات میتوانه اینقدر جدی باشه که خلاصه اختلال نظام ایجاد کنه اینجا فرمیدن که آقا این واجب نیست سلام کل اف بیا عدم وجوده بلکه ممکنه اضافه کنیم بگیم که بلکه موجب حرمت بعضی احتاحیاط ها اگر این اختلال اخت ایجاد کنه. اما اگر نه سطح پایینتر این تعبیر خیلی تفکیک خوبیه که این عبارت می که اسرو حرج کردن می توانه باشه. اگر این احتیاط تام، به اختلال نظام نینجامه اما به عصر و حرج بی انجامه اینجا می میتوانیم بگیم که چیه اینجا هم اینجا میتوانیم بگیم خلاصه وجوبی نداره حالا اون میشه که باش کار نداره بعد حضرت امام در اشتهاد و تقلیل صفحه پنج و دارن و اما تمسک به دلیل انصداد به این یوغال سنخته و امت احتیاط بحث انصداده و عمل احتیاط چی؟ و هوبه باطلان عیزه للوزوم الاسر والحرج بل اختلال نظام <تصفيق> یک کمی از اون کار آقای خلاصه روحانی یک کمی رفت گفت اگر اختلال نظام باشه حکمشی است اگر اصر حرج باشه حکمش امام داره میکنه نه اصلا بعضی احتیاط ها نه تنها اصر حرج داره بلکه اختلال نظام هم ایجاد میکنه فهو بله لعدم تمامیت مقدماته و لزوم و الاسر و الحرج منه فضلن ان اختلال نظام ممنون بعد حالا یه نقدی هم میارن تو اون بحث حالا تمسک به دلی انصداد و این بحث و عمل احدیات و این حالا اکنون دیگه هم مورد دیگه میفرماین در همین کتاب صفحه 178 نه املاو علم ناو اجدانم شاره لای ارزاب ترکل فاقیات فلا اون که ما و احتمال و تجویز العمل به قول العالم ولا به قول اعلم بل یحکم العرب به وجوب الاحتیاد ولاو ما اختلال النظام فضلا ان لزوم الحرج اگر ما یه پیشفر داشته باشیم که آقا شاره میگه بعد واقعیت رو حتما انجام داد اصلا به هیچ وجه نباید ترک بشه واقعیات راضی به ترک واقعیات نباشه خب نتیجه یعنی چی یعنی که شما احتیاط باید بکنی عقل حکم میکنه به وجوب احتیاط ولو بلغا مبالغ به کجا بلغا ولو اینکه منجر به اختلال نظام باشه حتی بالاتر از حرج اینجا تعبیر فضل عن لزوم الحرج یعنی چی یعنی اختلال نظام سطح بالاتر از حرج سطح منفی شو تحقق پذیری شو خب پس اینجا حضرت امام هم دارن تفکیک میکنم بین اختلال نظام و لزوم حرج لزوم حرج کمی سطح منفیش پایین تره پس در مجموع مقصده این اولا این دو تا به هم مربوط هستند ولی به صورت فل جمله اینها هر دو مقصد دارن اصول حرج ولی می بگیم مقصده اصول حرجش کم تره از اختلال نظام لذا اسره حدس تحقوق پذیریش بیشتره و حالا اون هم که از اماموین خاندیم نشان میده که چجوری مقصدهش بیشتره یا بگیم تحقوق پذیریش بیشتره این هم پس سه نکته نکته اول نکته سوم بحث نسبت اختلال نظام اسره حدس بود نس... ن... مف... نکته دوم هم. این بود که تحقق شرایط و عدم تحقق وجودی اونها رو بررسی بکنیم یکی هم بحث زمان نگاه زمانی بهش بکنیم یه نکته آخری هم تو این قسمت عرض کنم و عرضم تمام دوستان رو با یه چور پنج دقیقه استراحت، بریم خدمتشون باشیم برای بحث حلقات مشق اشتحاد و صحبت مباحثه نکته چهارم اینه که شار متعال خلاصه مسائل و مفاسد واقعی رو رعایت میکنه و در بر اساس نگاه عدلیه اون مسائل و مفاسد واقعی یا حسن و قفه ذاتی است و ذاتی و اختزایی است که خلاصه اینجا مد نظر میتوانه قرار داده باشه بنابراین این خود این مقوله اختلال نظام و عسر و حرج و حالا به ویژه اختلال نظام اینجا از این منظر باید دیده بشه لذا مثلا در مقوله احتیاط این احتیاط خلاصه با اون مفصده عسر و حرج و با مفصده اختلال نظام یه رابطه تنگاتنگ داشتش و خلاصه باید ببینیم شار متعال چگونه در نظر گرفته اون مسئله مفاسد رو ممکنه ما ندانیم ولو اینکه اینطور جاهای اجتماعی کمی میفهمیم خود اختلال نظام یه مقداری مفهوم هست در واقع یه جای حالت تبدی داره در واقع, در واقع مفسده اختلال نظام یک امره خلاصه بدیهی است وجدانی است ما میفهمیم آقا اگه اختلال نظام بشه سنگ رو سنگ بند نمیشه هر مرج اختلال نظام اگر نظام اجتماعی بخوایم بگیم دیگه همه مفاسد از دل این میتوانه در بیایه بسیار از مفاسد خلاصه اون مول, خلاص مول مفاسد خواهد بود و زمین در واقع میدان رو برای همه موارد میتوانه باز بکنه خب الحمد رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا نعب القاسم محمد و علی اهل بیت تاهرین المعصومین سیه مبقیت الله في العرضین و خیمز ارواح العالمین لحال فدا خدا رو شکر بحثمون رو تا به اینجا رساندیم یک هایی که در بحث مصلحه مقصده اختلال نظام فل جمله داشتیم با این نگاه تحقیق موضوعی در ادامه بحث در خدمت سیم.